درس 46 اون از رسائل اینا دو منظره یکی از منظره علم و یکی از منظره معلوم از منظره علمی مرحوم آزی عراقی قائل به با این که حقیقت علم جماعی با حقیقت علم تفسیدی فرق داره ما شفاقیتی در علم تفسیری هست در علم جماعی نیست و فرقشون در حقیقت علم نه در معلوم و معلوم در هر دو هم واقع ولی بوله بشکور اینه که فرق علم جماعی باید به تفسیری در معلومش. که در این تفصیلی تأییم داره در این مجموعی تأیید نداره و بعد وارد میشن به مباحث متعامل به این مجموعی که استخبوله بعضی ها بایدن به که مجموعی وقت مردد مثل آخوند فراسانی بعضی ها بایدن به این که واقعه مثل و بعضی ها بایدن به جامع مثل مرمون و اصفحانی و برموم آرخوی و یک بحث دیگه ای باز مطرحه که بحث علیت و باشه و باز بحث سنبوبی مطرحه که جریان اصول در اطراف چه به نحوه جمعی اطراف و که به نحوه از اطراف باشه این مقابلس مطرحه و گفتیم اینها در اصول به این نحوه که مطرحه در مقام افتاء مفید نیست و خیلی اصفت آقا از این منظر نمیتونه به نتیجه که میخوایم برسیم و خیلی مسائل اختلافی میونه و حتی در ابهام و اجمال تا الان باقی مونده به خاطر اینکه و باعث اجمالی کماف و حقو طبیعی نشده. خیلی مسائل در فکر منفعی که اونها رو دقیقی گرفتن برای این که علم اجمالی و منعزیزی تغییر مشروع رو نداره بعد خود مصندم را برای دایی میکنه که از خود کتاب میخونه بحث که مطرح کرده برای تفریق بین علم و علم اجمالی و گفتیم خیلی اهمیت داره اینه که متعلق علم اجمالی انوان نزاد و این تفریق بین علم و ذات قیل از این یک نظریه اصولی هست یک قاعده فقهی حساب میشه در مقام استعمال که ممارست با این قاعده به نتائج خوبی در فقه منتهی میشه علم تفسیلی فرقش با علم این که علم هم میتونه علمان رو منجز و به و ولی علم اجمالی رو منجز بکنه. دیروز قاعده ای رو ذکر کردیم این که ذاتیات از باب مجموعی خارجه و این خیلی اهمیت داره که ما به یک ازعانی برسیم نسبت به اینکه ذاتیات از باب مجموعی خارجه در باب مجموعی ما حکمی این ما بر ذات نمیتونیم اثبات کنیم و از این زاویه گفتیم که ذاتیات بر دو قسمه یعنی وقتی ذاتیات از بابه پجمال خارج میشه ذاتیات بر دو قسمه یک ذاتی داریم مثل مشتبه این و یک ذاتی داریم مثل جنابت نظر مرموم سید در قربه در مسئله سوم مبحث اخصال خونده شد که قایل شده به اینکه جنابت دائره بین دو شخص سبب وزد برای هیچ کدامشون نیست نمیتونه بگیم این ها کنه کنن هیچ کدام در بستر یه چهار همان باب آورده که اختداع عده ما به دیگری ممنوعه و این اختداع به خاطر چیه؟ اینها ها قاعدم به در مسئله سوم قصد دیگری مرد اقتدای ما نیست ما اون وجوبش رو میده دوگردن دیگری ولی در اعتماع اخت... و اقتدای اینطور نیست و حد خود منم هم هست بذاریم نمیتونم ردش کنم و این گفتیم یه تناغذاتی داره بی نفسه که بررسی می اینطوری نمیشه وارد بشیم چون این جنابت یا حضی یا نیست اگر هست باید قصد کنن دقل باید بگن اهد باید قصد کنه. قره بندازن چرا بگیم ایش کدام نداره بعد اگه قصد ندارن چرا اقتدار جایز نماشی اینها رو ما نمیتونیم بفهمیم. و کسی هم نمیتونه بگید در تحب اینطور افکار راهی نداره چون بنای فرخشیی بر جمع بین متفرقات و تفریقه بین مجتمعاته چون این باب از اون باب نیست چون منسزیت علم اجمالی عقلیه در عقلیات این حرفها مطرح نیست چون از حکام است. نیست بزا چطور میشه جنابت این ثابت نباشه ولی اختدای یکی به دیگری هم جایز نباشه اینها نیاز به راه هم دارد. در مواردی که معلوم به اجمال ما جنابت خودشون میگن ثابت نیست نسبت به مسئله اعتماع و اختدایی که به دیگری اون هم گفتیم قدجم و زهول انلامه فی اکثر کتبی و طبعه و علازالک سید المدارک و دیگران و کلماتی از آخند خراسانی صاحب جواهی و دیگران هم نفت کردیم. از ازان پیدا بشه به اینکه اون منتجیه عقلیه که مشهور دارم مطرح میکنن این عقیمه به نظریه عقیم و تأثیر در مبانی فقهی اصلا نداره و نمیتونه این مبنای فقهی باشه برای فتاوا با. بحث منتهی شد به اینکه ذاتیات از باب المجموعه خاردی قاعده است یعنی اونهایی که میخوان قواعد فقهی اصول بنویسن اینا رو باید بنویسن و اگه لازرا نفر بشه. قایده علالیت رو هزار نفر نوشته لا تئات رو هر کسی رسیده نوشته اونا که دیگه نیاز به بحث نداره یا قاعده استصاب رو یا امثال اینها رو چیزایی باید نوشته بشه که یک راحلی باشه بر مشکلات یه درمانی باشه بر دردهای ماسه الان داروهایی که تولید میشه همون داروهای سه هزار سال قبل یا فرد داره ولی اصول ما اینطور نیست داروهاش هم مال پنج هزار سال قبل قبلا قبل این بحث میکردن ما همین طور بحث کنیم. اون خاطر ما هستم پیش نداریم واقعیت رو نمیشه انکار کرد که پیش نداریم ده سال بیست سال میخونیم و درجا جا چون اینا سازشی با ذهن ما نداره باید همین طور قبول بکنیم قبول بکنیم که این طور. آقا در مسئله سوم بگیم قصد بر هیچ کدام واجب نیست در مسئله چهارم، من بگیم اقتدار یکی به دیگری جایز نیست ببینه یک مبنایی میخواد چرا این طوریه؟ با محل ابتلا نبودن که نمیشه اون اصل جنابت رو انکار کرد یا جنابتی هست یا نیست اگر هست قصد واجبه اگر نیست اقتدار جایزه لذا ذاتی یا قابل مجمالی خارجه به نحوی قاعده تام منطقه ذاتیات بر دو قسمه اینه گفتیم تحت قاعده در بیاد برای فهمه بهتر ذاتیات از باب علم خارجه و متعلق علم خصوص اناوینه اگر علم اجمالی به نجاست باشه به این دو طرف نجاست عهد احما ثابت میشه اجتناب از عهد ما هم واجب میشه و تمام آثار برش مترتب میشه نجاست اهده ما نجاست عنوان ثابت میشه چون نجاست متقومه به ذات نیست نجاست متقوم به عنوان هم باش. هم ذات نجس داریم هم عنوان نجس اشکالی نداریم کلم ل دکن نزیر متعلق تحالت به نجاست شیء نزاد ولی جنابت اینطور نیست نصوصی داریم که جنابت متقوم به ذاته قنابه این جنابت انوان معنا نداره از نظر شریع علم اجمالی دارم به جنابت اهده ما جنابت اهده ما ثابت نمیشه مثلا جنابتی ثابت نمیشه هیچ کدامشون جناب نیستن اهده ما در این موارد تنجیز نداره به خاطر این جنابت متقبی به ذات طبق نصول یعنی علم تفصیلی باید پیدا بشه که این شخص محدثه به این حدث حدث کلی نداریم حدث کلی معنا نداره جزای استصاب کلی که مثال به حدث میزنن، زنن اونا هم همینطور مقتلابی ما کلی حدث رو میخوایم استصاب کنیم کلی حدث به درد ما میخوره. حدث این شخص مهمه حدث ذاتو می میخوایم اثبات کنیم نه حدث عنوان رو نه حدث کلی رو لذا تمام مبانی و مباحث استصاب کلی هم به هم میریزه به هم میریزه به این معنا که جمع میشه وقتی جمع بشه راحت نفس میتوشی راحت میتونم طلبات نفس بکشن میتونم فکر کنه این همه دندوبیدی که تو استصاب کلی ریخته شده اینا دیگه نیست شما راحت میتونی یا فکر کنی یا بخوابی اگر اینا باشه ما همیشه مرددیم چون همیشه تو ذهن ما این هست که ما مباحث استثابه کنید رو حضمش نکردیم لازم هم می سازم کنیم به خاطر اینکه خیلی اون سمره که باید داشته باشه نداره حالا تشخیصش بحته خود طلب ما که احدهمای نجس ثابته ولی عهده جنب جنوب ثابت نیست جنابت عهده ثابت نمیشه اگر این مجمالی دارم یا یا عمرو جناب هیچ کدام جنب نیست. قصر بر هیچ کدام واجب نیست. ابتدا عهد ما به دیگری هم جایزه. هیچ اشکالی نداره. بله. بله. بگو بی نه خداشکرش میگم شاید مفید از باشه به نظر میرسه که از اندهی که بیان کنید میرسه به اینجا که دوباره این که این به این دلیگی به این معنی که خودر جنابت بعد به جنابت آره از نصوص آره مبهز اقصال مسایدش تپ آره بل ادرس که آقای حکیم نوشته بودیم آقای حکیم اسلا دهیلشون آورده دیگران هم آوردن مثبافقیه حمدانی هم آورده دیگران هم آوردن مراجعه می خاد فقط من مجموع حکیم ذکر کرده بود ولې اینا چون تابه مشهورن نمی اینا رو قبول بکنن بیان چون نه آقا هدما و کسي نګفت کسی نگفتی کسی ن حرفو نزده به این راحتی نمیشه بزنی. به این راحتی بگیم عهد و همای جنوب که نابلش ثابت نیست بجالا ما داریم بگیم ببینید شخصه که جنوب میشه نه اونها شما اگه علم تصفیلی داشتید زید محدثه به این حدثه حدث ثابته ولی اگر علم اجمالی پیدا کردیم این که اهدو هما مختصه به این حدث ثابت نیست علم تفصیلی باید باشه علم اجمالی مفید نیست به اینهی باید معلوم باشه این شخص مختصه چرا؟ چون این حدث متقوم به ذاته این حدث متقوم به ذاته یعنی نمیتونیم بگیم کلی حدث نه حدث زید حدث سلما حدث امثال اینا حدث مال ذاته مال عنوان نیست هضمش یعنی نه تون میکشه اگه 10 سالتون بکشه باز مفیده برات خبز اینطور نیست هوام نجس میشه زمین هم نجس میشه هوام نجس میشه نه عنوان علاکوتی ذاتی نیست که دخیل در موضوع باشه اینا در اطرافش خیلی فکر شده خیلی مضافم بر برای این منشای فتوایی داره فوقه رو نرخ کردیم اینا مفتیه به جواز اعتمام اینطور نیست که نه اهلی این حرف رو نزده دارن اونم که نزدن تشکیکات رو دارن بله رو دیگه ما داهمونه دیگه علم تفسیری میخوادیم به اینه ببین، ببینیم تفسیری یعنی ذات رو بدیم شما بفهمید زید محتسه یا عمو محتسه ولی کلن میدونم اجمالاً که احد و همه ثابت نمیشه حالا این نیاز به تبرید داشت این مدعاز دیگه مدعاز نظریه مفیدیه یعنی خیلی میام میان بره شما فرض کنید یه هزار کیلومتر راه رو میکنه ده کیلومتر خیلی مفیده و نگر اینطوری نخونیم که شما همون مسیر مشکور رو باید برید دیگه و آزادید میتونه همون مسیر رو برید همون مسیری که دیگران تهیل میکنن شما میتونید کسی مسدود نمیکنه منتها اختیار با شماست میتونی این مسیر رو انتخاب کنید میتونی اون مسیر رو انتخاب کنید مدعا اینه که ذاتیات از منطقه ذاتیات علاق اسمه بعضی از ذاتیات رو دید گفتیم ملحبه به علم تفصیلی میشه بعضیش ملحبه به شبهه بدلیگه میشه یعنی در بعضی از ذاتیات چیزی ثابت نمیشه در بعضی از ذاتیات نیازی به علم جمالی نیست چون قبلش ثابت شده یعنی در یکی سر از الزام در میاره در یکی سر از در میاره ذاتیاتی که از باب علم خارجه یا سر از الزام در میاره یا سر از ترخیص در میاره نسبت به جنابت سر از ترخیص در آورد جنابت سابق نیست علم اجمالی داریم که یکی از این ده نفر محتس به حدث اجبر محتسی هیچ کدام ثابت نیست قص برشون واجب نیست جواز اختدام داره بر هر دو هم داریم بر اولی فتوای مشهوره بر دومی فتوه های در یک قسمش هم سر از ارزام در میاره مثل مشتبه بلمیته در مشتبه بلمیته علم اجمالی نمونتجز نکرده اجتناب از مشتبهین بلمیته که احتیاطاً واجبه اندر مشهور یا مستند منتجزیت علم اجمالیه یا مستند به اصالت عدم تسکیه است یا مستند به قانونیه که گفتیم قاعده یکی گفتیم که این حکم وضعی قانونیه و مقتضا شموله بنابراین باز نیاز به علم اجمالی نداره اعتباطی به علم اجمالی نداره حالا وقتی ذاتیات خارج از باب علم اجمالی باشه و یا سر از الزام در بیاره مثل مشتبه اینه بالمیته. یا سر از ترخیص در بیاره مثل حدث جنابت و انصالی وشیش این دو قسم از کجا اومده توجیه فنی میخواد توجیه فنی نه در حد مثال در حد واقعیت که ذاتیات وقتی از بابید مجمالی خارج میشن چرا اینطوریه بعضی از سر از ترخیص در میاره بعضی سر از الزام در میاره چرا علم اجمالی به جنابت اهده ما جنابت رو نفکش میکنه مطلقا ولی علم اجمالی به اینکه که اهده میته حکم به الزام میکنه حالا برو استناد به خودش نباش. بسیدش اینه که ما دو نوع اعتبارش داریم دو نوع اعتبار شرعی داریم یک نوع اعتبار شرعی داریم که سر از ترخیص در میاره یک نوع اعتبار شرعی داریم که سر از الزام در میاره و به عبارت اخرام دو نوع اعتبار که در شرع ثابته در یکی مایق و فیه ذات موضوعنده حکم اعتباری چون ذاتیات خارج هم ذاتیا ذاتیات وقتی خارج هم ذاتی که از بابر مهمالی خارج میشه دو قسمه اسم اول ما یق و فیه زاد موضوع حکم مکمه اعتباری دومی قسم دوم ما یق و فیه زاد متعلق حکم مکمه اعتباری یعنی ذاتی یا موضوع یا مترمدمه در مواردی که موضوع سر از در درمیه در مواردی که متعلقه سر از الیزام در میاره. و شبیه هم این بحث رو در مواحظ صحابه گفته بودیم که ذات یا در رتبه موضوعات احکامه یا ذات در رتبه متعلقات احکامه و به تعبیر دیگه این دو فرق همون فرق بین شروط جعل و شرایط مزبوبه ماه و الفرق بین شروط الجعل و شرایط مزهور این فرق همون فرقه فرق از بین شروط جعلیه و شرایط مزهور کمان که فرق از بین شروط اتصاف و شروط ترتب این همین رو خوندیم گردنه منتها تطبیقش خیلی مهمه و این به اسمای دیگه خوندیم ما و الفرق بین شرط و القید این همونه ذات بعضی از موارد شرط، بعضی از موارد بین در مثل حدث شرط، در مثل تذکیه قید لذا در یکی سر از ترخیص در میاره در یکی سر از الزام در میاره علا کل تقدیر ذاتیات از باب المهمالی خالص این طونس ذاتیات وقتی خارج میشه همیشه سر از الزام از در میاره. بعضی از موارد سر از تلخی در میاره. ما یک او فی موضوع موضوعاً حکم الائتباری ما یک او فی ذات متعلقا لالحكم الائتباری در یکی اما جنابت از شرایط جنه یعنی اگه وجوب قصری به خاطر چه بشه موضوع چیه موضوع جنابت جنابت موضوعه موضوع اثبات نمیشه با علمش مالی ولی تزکیه چرا اجتناب ازش واجب میشه و باید بذارن کنار خاطه متعلمه اجتناب از میت واجبه و مقدمه ای چیه؟ هر دو رو بذارن کنار طبق مبنای منجزیت علمش مالی یا طبق مبنای اصالت عدم تزکیه یا طبق مبنای مقتزل قانون و شمال. بنابراین ذات بر دو بسمه ذاتی که در رتبه موضوعه مثل جنابت جنابت موضوعه خیلی از انکامه متعلق نیست لذا ادالت امام جماعت موضوعه ولی ادالت شخص شاهد طلاق متعلقه به خاطر یک طلاقی باید ایقا بشه شرائطی داره این مجعوب ولی نماز میخوانیم بخونیم این مشروط به شروطیه شروط جعل، ادالت در امام جماعت میشه از شروط جهدیه ادالت شاهد طلاق میشه از شرایط مجعوب یعنی طلاق واقع نمیشه مگر اینکه شخص عادل باشه واقعا حالا طرف که این مثالی که داریم میگیم ولو بنابر بعضی از اعمال باشه رو هم یه تو ذهن حاصل بشه منابشه در مثال نشه بله مو... اجتناب از خود میته بودی خود مکندفه خود مکلف موضوع دیگه که اجتناب از میته یعنی متعلق و متعلق خود مکلف میشه متعلق و متعلق لذا این رو باید اتیان کنه دیگه یعنی از موارد تحصیل یک تکیفه نه حسولی بذار برگشت این ذات یا به موضوع یا به متعلقه مثل شرط و وصل میمونه چرا شرط مفهوم داره وصل مفهوم نداره به خاطر که شرط در رتبه موضوعه موضوع نباشه حکمی کار نیست جنابت در رتبه موضوعه تا اثبات نشه حکمی اثبات نمیشه برمشه. و مفروضه ای که مشغول گفتن جنابت اثبات نمیشه و چطور میگن اقتدار جایز نیست اگه موضوع نیست موضوع اثبات نشه او اثبات, اثبات نمیشه شما سوال داریم ببینید ما موضوع که قبل اما از همونه همونه در تعریفش امینه ما یترتب علی فعلیت حکم مش موضوع ما یترتب علی فعلیت حکم مش متعلق بله بله تشخیصش از میار داره معیار داره ذات دو قسمه یا در لطفه موضوعه یا در لطفه متعلقه و اعتباریات در دو قسمه مشهور فوقه ها قائلن مینکه تمام مجمولات شر همش حکم شرعیه مثلا قانونی قائل نیستند ولی قبلا گفتیم که نه اعتبارات شر در دو قسمه بعضی از حکم شرعه. بعضیش بعضی قانونه قانون فراتر از حکم شرعیه حکم شرعی یک اعتباری که جهل و شک و تردید و اینها درش عذره ولی در قانون اینا عذر نیست بعضیه چیز قانونیه قانون شمول داره کسی نمیتونه ادعای عذر بکنه عذرش پذیرفته نیست یه یعنی قانون باید علم به قانون پیدا میکردی لیزا فرق از بین قانون و خود به حکم اعتباری صفر حالا ذات هم همینطور بعضی از موارد ذات در رتبه موضوعه حالا تشخیصش با خوده. شما جنابت رو در رتبه موضوع بدونید ثابت نمیشه در رتبه متعلق بدونید ثابت میشه نظام معیار داره مناقشه در مثالهاش هم نشه اصل معیار را با این بگیرن ذاتیات از باب المجمالی خارجه و خودش دو قسمه دو قسمش هم یکی ذاتیه که ملحق به باب موضوعات، دوم ذاتی که منحق باب متعلقات احکامه در یکی حصولیه در یکی تحصیلیه لذاب فرزاد اما دخید و نفیجان به الموضوع سر از ترخیص در میاد و اما دخید و نفیجان به که سر از الزام در میاد این ها سفیه 148 نوشتن با دقت خونده بشه و مبارسه بشه و تشخیص صغرایات با خودتون فهم اصل قاعده است که ذاتی میتونه در رتبه موضوع باشه میتونه در رتبه متعلق باشه در مواردی در رتبه موضوعات سر از تلخیص در میگار حالا مثال ها شرکونو میشه شما قبول کردید از موضوعات باشه باشی قبول نگردید از متعلقات باشه در صفحه 199 نوشتیم اناوینم بر چند قسمه این عنوانی که در مقابل ذات ارانداریم برس میکنیم قیل از اون عنوانیه که میگن عنوان مشیه یا موضوعیت داره و امثال این ها برمترفته بر عنوان یعنی چیه یعنی این عنوان حیثیت و است واسطه و است متقیم بر بر ذات یعنی غیر قابل تبزیل نه هم هم نوشتم اعتباریات هم نوشتم اون قسمی که محل بحثه اونم سطح 199 توضیح دادیم میشه بگیری آخه ببین ذاتی چند تا اطلاق داره پنج تا اطلاق داره ذاتی که داریم میگیم یعنی شخص رو تا تشخیص ندی حکمش ثابت نیست هیز مال سلماست نه مال اهده ما شخص که حائز میشه نه عنوان. تفریر بین عناوین و زباد مثلا ریاست اونوانه یه روز این پشت میزه یه یکی پشت میزه شخصش مهم نیست ولی بعضی از موارد شخص مهمه ذات بچه انسان براش مهمه نه عنوانش. بچه های دوست داره ذاتش مهمه ولی از دوست اون رفاقتش به در بودنش، منفعت ازش در دربیان اونش مهمه ذاتش رو میخوایم نباش ببین روایاتش انشالله و ببین با این ذهنیت روایاتش نگاه کن جنابت وقتی ثابت میشه که مال زید باشه مال عمد باشه مال خالد باشه منصوب به شخصه یعنی فعلی اومده که فائل درش اشتخیه زاد درش اشتخیه میگه درست خارج نیست که ما در حد ذهنیت سازیه ذهنیتی درست بشه برای اینکه آقا اینطوری نیست حتما اهد و نجس که نجاست عهد ما ثابت میشه اهد و همای هم جنابت اینها ثابت بشه نه اینطور نیست در یکی ثابت میشه در یک ثابت نمیشه حالا مشهور که فراتر از این هن. میگن اهد و نجسه از حقه اجتناب کن ولی میرزای قمی میگه نه اهده ما کافی وقت میگن چرا میزای ببینطوری گفتیم برخلاف احتیاط راه رفته حالا این احتیاطه پس اضطراب خیلی بیشتر از اینهاست. یعنی باستابش در حدی که من دارم بگم به اضطراب و تشویش بیشتر از اینها که ما یه قاعده بیاریم الاشتغال و یقینی یا صدی البراغت الیقینی. بعد بگن آقا این عقلی یا غیلی عقلی یعنی آقا بعد میگن اقلی غیر قابل تفسیزه هشت موردشو خود موسنده قابلتو که تفسیز خورده و قانون اقلی باید تفسیز بخوره چرا داری تفسیز میخوره پس استراب هست تمام سعی ما اینه که این استرابات کم بشه و شما بخوای فتواه بدید تب به این مبانی بتونید فتواه بدید تا میشه به علم اجمالی جنابات به تحقیل معلوم نبیانه که الاجمال معلوم؟ همون دیگه می بگیم به اجمال به درد نمی خوره. جنابت اجمالیه به درد نمی خوره. جنابت تفصیلیه موضوع احکام همینه می خواهیم بگیم احدهما قاتل، قاتله می قصاص کنیم؟ ها هما ولیه می از این آیازم بگیریم؟ پر فقه ما از این چیزا یکی از این دوتا زمین مسجده میتونیم به زن بگیم ایجا نره خب این برای مبتنی این ممناز اینه باید تشخیص بدیم ذاتیات ادعا که از باب المجمالی خارجه ایت مجمالیش در ذاتیات نداره بعد هم براش مثال داریم بیزنیم هم داریم قانونشو میگیم ذاتی بعضی از موارد موضوعیت داره بعضی از موارد موضوعیت نداره متعلقه اگه متعلق باشه قانون دیگه اینو میگیره اگر بخواد موضوع باشه اثبات نمیشه تمام بحث رو همینه یعنی اگه از شما پرسیدن احد اوما نجسه جواب استفتار به که از احد اوما اجتناب بشه ولی اگه پرسیدن که احد اوما مختصه بگی حدث ثابت نمیشه چرا؟ ممتاز. چون حدث قائم به هیچ فرقی نداره حالا <تصفيق> امیتیت هم میاد تو اون هشت مسئله که شیخ آورده ما میخوام نظرین که قالب بشه بند همش خود شیخ انساری شیشت راه حل آورده و اوستقل و فرمودین حال اختیار نکرد ها یه موقع از علمیت شیخ کم نشه در نظر شما اینا انتخاب نکرده چون همش سسته پس یه راه حلی بوده که رو حالا داریم میگیم <تصفيق> همه رو حل میکنه مگه میشه ما یه چیز بگیم حل نکن فیلی چه افری میکنه علل قاعده که موضوع بودنش ثابت نمیشه قاعده نه که اگه ما شک بکنیم یه موردیه از ما سوال شده نمیدونیم در رتبه موضوع یا در رتبه متعلق موضوع بودنش ثابت نمیشه. عنوانه ذات اثبات نمیشه. اونو قبلا هم گفته بودم. ما این بخش رو از اول سال داریم میگیم. ولی هنوز اون ابهام رو داره. ابهام رو داره. البته خب یه مقدار باز شده. آقا این در حد نینچه مشتهدی میتونن نظر بدن در خانواده خودشون در <تصفيق> پس این مراد از ذاتی ها شد به این حدث متقومه به ذاتی ها یعنی باید شخص و تشخیص بدیم شخص, شخص رو تشخیص درین نمیشه. میگن احد و هما ساره به میتونیم دستی این رو بزنیم مشهور میگم باید بزنی دست دوتاش هم بزن میزای قوم میگه دست یکی کیلو بزن ما میگیم نه دستیش کدامو نزن اله حدود تدرقو به شبهات سال هشتاد و سه اینو وقتش کردیم اله حدود تدرقو به شبهات در صدوب مصطوفا اینو ردش کردیم درست نیست چی میگه الهود و تدره ثابت نیست خیلی در ثابت نیست اما شبت ثابت میشه برای شما, <تصفيق> دو دو شما. که ثابت نیست الهود و تدره و بشبه ها جز مشوراتی که بیاساس الان کل تقدیر ذاتیات از واقع نجمالی خارجه همین ذهنیت رو پیگیری کنید یعنی تو کلمات هم مراجعه میکنید تو مال همین باشید ذاتیات خارجه و ترین دقیقی که شما حواشی رو نگاه کنید ببینید یه استراباتی در این معللین هست یه استرابی دارن نمیتونن ج یه قید و شرطی همیشه برای خطابا میارن برای اون چیزی که مشغور میگن نباشه چرا این قید و قیود رو میارن؟ برای اینکه یه سری در اونجا هست اون صفرش چیه؟ معلوم نیست ما احتمال میدیم صفرش این باشه شاید بعدن شما احتمال میدید سردش چیزی دیگه الان کل تقییر ما فتاوای فقهای را آوردیم که حدث احد و همارو قائل میستن مشهور که در عروه بازتاب داره قائل به عدم وجوب جور و برا محدث عنوانی میشه علامن قائل به جواز اختدا میشه و دیگران افرادی مثل سید مداره تبعیت میکنن از این نظریم اینا فقیه کمی نیستن اینا قائلن به اینکه که عهد و به دیگری میتونه اختدار کنید حالا شما نظرتون چیه؟ شما این رو باید و این معیار بیارید بعد از این که فهمیدید ذاتیات از با به مجمالی خارجه حالا آیا اعتمام متقوم به انوانه یا متقوم به ذات؟ آیا حلس متقوم به ذات یا متقوم به انوانه؟ اینا رو خودتون تشخیص بدید. یعنی نمیشه قائل به تفصیل بشید حالا با این همه در قروه قائل به تفصیل شد قسط بر هیچ واجب نیست ولی اختیداشون جایست این طوره یعنی یه تفصیلات این طوری دارم ولی اگه بخواد روم معیار باشه شما این طوری فکر کنید تو ذهن باید یه طوری فکر کنه که به یک نتیجه برسه که عملی باشه دیگه ما بتونیم تمبینا فرضا بدیم اخوند صاحب کفایه ازش نقل کردیم و دلیل رو آقای حکیم نقل کرده بود و مهمترینش همون نقل قول اخوند خراسانیه که ردش نمی کنه که من المحتمل نظر اونه که نفی حدث میکنه از عهد ما و میگه در موارد مجمونی ثابت نیست یعنی که حدث مال شخصه مال ذات، مال انوان نیست. حالا هزاران مسئله بر شما عرضه میشه، خودتون بساونت دارید. الان سرقت مال انوان یا مال ذاتیه. و سایر مسائل در تمام ابواب فقهی وقت باشه هبه، هبه مال ذات یا مال اینوان شما این هبه رو به عنوان رفاقت به من داده بودی؟ یا به عنوان ذات من به من داده بودی کدو بشه؟ که رجوع درش جایز باشه یا نباشه یعنی در خیلی دزباب راه پیدا میکنه فرصت این چیزو نداریم این همه بخوایم توصیه بدیم ولی اصل مطلب رو میخوام تو ذه واضح بشه برای که ذاتیات از ما به این بشه خارجه علم اجمالی چیزهای سبک رو ثابت میکنه، چیزای چیزهای سنگین رو نمیتونه. احکام سنگین رو علم تفصیلی میخواد و بدعت هم نیست بدعت در علم اصول هم نیست نظیر داره از زمان حدلامه تا الان هم. همه رو نوشتیم حتی آدرست هم براش نوشتیم کسی نمیتونه تونه بگی این طوری نه مراجعه کنید خیلی از کلمات رو مرحومه حکیم کردم نوشتم که اشون اینطوری آورده ساعت جواهر دیگه با تمام ترقی فقر قائل شده به اینکه مصطفیه در زدلده نیست که حتما بگیم اهده همه محدثه یا نمیتونیم اثبات کنیم یعنی داره تمایل پیدا میکنه به طرف سید مدارک و علامه در کتابش خبیم تمایل به خاطر چیه؟ به خاطر این مسئله اختلافیه منشه اختلافیه عدم تشخیص انوان از ذات حکمال انوانه یا مال نمی نمیدون لباس انسان از اعضای غیر معکول ده یعنی محضر و نباید باشه این محضر و ذات اون ببروشیه یا نه محضر و به عنوان یک عنوان هر چیزی حرمت اکل داشته باشه ولو یک دوزفندیه که زمه شرعی نشده بود اگه ازش لباس درست بشه این محرمان عکده. و لباسش هم مانعیم داده حالا به ذات میخوره یعنی اون ده تا سینزه تا حیوانه یا هر چیزی که حرمت عکل داشته باشی ویلی گفتیم ناینی در صلاحات مشروعش آورده توضیح داده و این نظریه رو میشه تصوری بده به تمام فیل ولو خودشون اینطوری قائل نشده و طبق مشروع در کتاب های اصولی و فقری مش میکنه کنه ولی خیلی از موارد اینا پیش میاد نفقه مال انوان زنه یا مال زن ذات زنه اگه ذاتش باشه ناشه زن باشه نفقه داره ولی اگه مال انوان اطاعت زن باشه اگه مطی باشه نفقه رو داره اگه مطی نباشه نفقه نداره ودایت پدر بر باکره رشیده مال ذات پدره یا مال انوان اینجا فهمش بیشتر از دخترش باشه. بشماه تشخیص بدیم اگه گفتی مال ذاتشه بنابراین در تمام موارد باید استیزان باشه اگه گفتی مال انوانه اون موقع میگن دختر مسلحت خودش رو بهتر از پدرش می‌فهمه این همونه این همونه ذات انوانی که تو فقه اصول الان امثال داریم میگیم همشه میدونید شرابه این باشه این میشه شما این خمریت رو در رتبه موضوع بدونی اجتناب لازم می از هیچ کدام آزمون هایی بود که الان شما میتونید با بشه میتونه داد بوده توی شراب نجازه، نجازه، نجازه برد. این یه هست؟ یه این موضوع نه اینا همونه هیچ فرق نداره اینا همونه هیچ فرق نداره حالا دو این مثالم باز شنبه بحث میکنم دو همین مثال هم بحثی همونه هیچ فرق نداره حالا میگم که این معنا اگه باید تحقیق کار زاد خود دو قسمه زاد خودش دو قسمه زاد خودش دو قسمه امروز چیزی که گفتیم این که زاد بر دو قسمه یا در رتبه موضوع سر از ترخیص در میاره یا در رتبه متعلق سر از الزام در میاره اینا رو به همین نحری که این جزوه ها نوشتم به همین نحر بخونید تا تشتت رعی و فکر براتون پیش نیان بلخم